عزیزان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. آیا واقعاً میخوان کتاب مقدس رو تحصیل کنین؟ امروز یاد میگیریم که مطالعه موثر کتاب مقدس منوط به سه قدم مفید هست، مشاهده، تفسیر و بکار بردن. ما درس مخصوص خودمون رو ادامه میدیم و خدا رو برای این فرصت تحصیل کلامش شکر می این درس برای کمک به شما برای درک بهتر کلام خدا، کتاب مقدس تراهی شده. این کلاس با همکاری دانشکده کوچک کتاب مقدس به شما فرصت میده که کتاب مقدس رو همانند یک دوره دانشگاه الهیات بیاموزید. این شما و این استاد به درس سه گوش کنیم. چگونه کتاب مقدس رو مطالعه کنیم؟ سلام دوستان در این درس ابتدا میخوام چند چیز دیگه در مورد کتاب مقدس بگم که میدونم درک شما را از کتاب مقدس باز میکنه. درک شما از مهمترین کتاب جهان به دانشکده کوچک که کتاب مقدس خوش آمدید. کلاسی که کل کتاب مقدس رو کتاب به کتاب یاد خواهیم گرفت. ما تازه این درس رو شروع کردیم پس ترتیبی بدید هر روز در همین ساعت همراه ما باشید و از دوستانتون دعوت کنید که به کلاس ما ملحق بشن تا با هم کلام خدا رو بیاموزیم به همه شما خوش آمد میگم قبل از هر چیز میخوام به نحوه مطالعه کتاب مقدس حرف بزنم فکر میکنم لازم مردم بدونن که چطور کتاب مقدس رو مطالعه بکنن ما باید برای مطالعه کتاب مقدس سه قدم برداریم و اون سه قدم بارد هم از مشاهده، تفسیر و بکارگیری مشاهده سوالاتی پیش میاره اون چی میگه؟ یعنی وقتی به کتابی از کلام خدا میرسید، وقتی به بابی از کتاب مقدس میرسید، وقتی به آیه ای از کتاب مقدس میرسید، باید این سوال رو بپرسید. اون چی میگه؟ دومین سوالی که باید بپرسید تحت عنوان تفسیر میاد. سوالی که کلمه تفسیر مطرح میکنه اینه: معنی اون چیه؟ سومین سوالی که باید خودتون رو عادت بدید وقتی که در کتاب مقدس به قدم بکارگیری میرسید بپرسید اینه. این برای من چه معنی داره؟ این واقعا ساده است. مشاهده اون چی میگه؟ مردی رو به یاد میارم که چندین سال قبل در کلاس کتاب مقدس من بود و باب به باب در کتاب مقدس پیش میرفت و اگه من از گروه میپرسیدم که منظور این چی هست این پیرمرد به آیه نگاه میکرد و بعد به من نگاه میکرد و میگفت بقیده من معنیش همونیه که داره میگه. حجاب او همیشه حق داشت چون هر آیه از کتاب مقدس هر کتاب هر باب همیشه منظورش واقعا چیزیه که میگه البته سوال درست اینه اون چی میگه از یک لحاظ این مهمترین سوال از این سه سواله اون چی میگه به محض اینکه جواب اون سوال رو گرفتید فهمیدن معنی اون چندان سخت نیست مگر اینکه نخواهید بدونید معنی اون چیه البته سوالی که ما بیشتر در این دوره آموزشی بهش علاق مندیم و به دنبالش هستیم، این سوال سومه. این برای من چه معنی داره؟ این یک دوره دانشگاهی نیست و ما قصد نداریم از شما متخصصان یا محققان کتاب مقدس بسازیم. دیدگاه ما برای این دوره مطالعاتی کتاب مقدس اینه که شما را به قسمتهایی از کتاب مقدس هدایت کنیم که اراده خدا رو بر اساس هر روز زندگی شما به شما نشون بدیم ما علاقمند کاربرد کتاب مقدس هستیم، پیغام سمیمانه و کاربرد سمیمانه کتاب های کلام خدا. کاربرد باب به باب و آیه به آیه کتاب مقدس. وقتی به بخش کاربرد می رسید، لازم از خودتون سوالاتی مثل این بپرسید. آیا اینجا مثالهایی برای پیروی هست؟ آیا اینجا هشدارهایی برای هزر کردن هست؟ آیا فرامینی برای اطاعت هست؟ آیا گناهانی هست که باید از اونها دوری کرد؟ آیا حقایق تازه ای از خدا و یا عیسی مسیح هست؟ آیا حقایق جدیدی از زندگی خود من هست؟ آیا کلمات چالش برانگیز و الهام بخش هست؟ یا کلمات تسلی بخش و دلگرم کننده؟ آیا سوالی هست که نمیتونم بپرسم؟ آیا آیه دیگری هست که مربوط به این قسمت باشه؟ این سوالات به شما کمک میکنند همینطور که در کتاب مقدس پیش میرید از کلام خدا منتهای های استفاده را بکنید. میخوام تذکرات پایانی راجع به کتاب مقدس رو براتون بگم که میتونیم بهشون قوانین مطالعه کتاب مقدس بگیم. برای هر کاری قوانین و راهنمودهایی هست و برای مطالعه کتاب مقدس هم قوانین و راهنمودهایی هست. در دانشگاه ها از کلمه ی استفاده میکنن. بهش علم تفسیر میگن. ما این کلمه رو به کار نمیبریم. ما فقط میگیم قوانینی که باید در مطالعه کتاب مقدس مراعات بشه. این یکیش هست. وقتی به متنی از کتاب مقدس میلسید این یادتون باشه. یک تفسیر هست اما میتونه هزاران کاربورد داشته باشه. کاربورد متفاوت از تفسیره. در تفسیر ممکنه فقط یک تفسیر باشه و شما لازم نسبت به اون فروتن باشید. مخصوصا اگه دیگران با تفسیر شما موافق نباشند، اما در مورد کاربرد ممکنه هزاران راه باشه که روح القدس اون کلام رو در زندگی شما به کار بگیره. از اونجایی که کتاب مقدس کتابی درباره مسیحه، شما در تمام مدت خواندن کتاب مقدس باید منتظر مسیح باشید. وقتی عهد قدیم رو مطالعه می‌کنید، یادتون باشه که منتظر نمونه‌ها و حشدار ها هستید. نظریه‌ای هست که برطق اون هفت کتاب اول عهد قدیم تاریخ هستند. تاریخچه‌های زیادی در کتاب‌های شریعت و انبیا وجود دارند. یادتون باشه وقتی اون تاریخچه رو در عهد قدیم می‌خونید یا در کتاب تاریخ عهد جدید به دنبال نمونه‌ها و هشدارها باشید. وقتی اون تاریخچه رو در عهد قدیم می‌خونید یا در کتاب تاریخ عهد جدید به دنبال نمونه‌ها و هشدارها باشید. وقایه تاریخی در کتاب مقدس به علاوه تاریخی بودن میتونن مفاهیم تمثیلی هم داشته باشن منظور من از اون اینه در گلاطیان باب چهار آیات 22 تا 24 پولس رسول میگه ابراهیم دو پسر داشت. اینا چیزای تمثیلی هستن. کسی بر این واقعیت شک نداره که این مسئله ای تاریخیه. ابراهیم دو پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. اسماعیل پدر اعراب شد، اسحاق پدر یهودیان شد. امروز اعراب و یهودی ها در سرزمین مقدس هستند. این تاریخه. پولوس رسول میگه ابراهیم دو پسر داشت. این اینجا مسئله ای تمثیلیه، معتقدم، او با نمونه و اصول نشون میده که در کتاب مقدس یک داستان میتونه تاریخی باشه و بدون کم کردن چیزی از تاریخی بودن اون داستان، همون داستان میتونه مفهوم تمثیلی هم داشته باشه. وقتی پولوس رسول گفته که این همه بر اونها اتفاق افتاد، به عنوان مثالها او از کلمه یونانی استفاده کرده که مثال ترجمه شده. اون کلمه که مثل کلمه نمونه یا گونه هست. چیزی که در حقیقت او میگه اینه که همه این چیزها که اتفاق افتاد نمونه هست که مثل درسهای آموزنده هست یا تمثیل. پس وقتی متون تاریخی عهد قدیم رو میخونید به علاوه مطالعه تاریخ به این تمثیلها و نمونه ها و مثالها و هشدارها توجه کنید. قانون دیگه برای مطالعه کتاب مقدس اینه که همیشه قسمتهای مبهم و گیج کننده رو در پرتو و آیاتی با مفاهیم واضح تفسیر کنید آیات بسیاری در کتاب مقدس هستند که درکشون سخته آیات بسیاریم هستند که درکشون سخت نیست همیشه آیات مبهم رو در پرتو آیات واضح تفسیر کنید قانون دیگه برای مطالعه کتاب مقدس و نزدیک شدن به اون اینه که هرگز با معنی که در ذهنتون از بخشی دارید به اون قسمت نپردازید به عنوان یه شبان آیاتی رو با خانومی درمیون گذاشتم که درگیر یک مشکل بود او به من گفت شبان منو با آیات گیج نکن من تصمیمم رو گرفتم بعضی ها این گونه به کتاب مقدس نزدیک میشن اونا قبلا تصمیمشون رو گرفتن اگه شما قبلا تصمیمتون رو گرفتید برای خدا مشکله که به شما نشون بده که کتاب مقدس چی میگه معنی اون چیه و او میخواد برای شما چه معنایی داشته باشه قانون مهم دیگه برای خواندن کتاب مقدس مخصوصا اگه کتاب مقدس رو تعلیم میدید اینه که به محض اینکه معنی آیه ای از کتاب مقدس رو یاد میگیرید قبل از اینکه که اونو به کس دیگه‌ای تعلیم بدید از خودتون بپرسید آیا شخصا مایلید از اون اطاعت کنید و قانون دیگه اینه که همیشه به داشته باشید که خدا با کلامش با ما صحبت میکنه پس با دقت به کلام خدا نزدیک بشید از خدا بخواهید چیزهایی رو توسط روح شخصا براتون باز کنه مزامور نویس اینطور عنوان می‌کنه چشمانم رو باز کن که بتونم حقیقتی رو که تو برام داری ببینم این روشیه که باید به کتاب مقدس نزدیک بشید نه ادیبانه نه مثل یک محقق سعی نکنید متخصص کتاب مقدس بشید بلکه سعی کنید با خدا مراوده کنید و ذهن و دلتون رو باز کنید تا خدا بتونه با شما گفتگو کنه بهترین دعا برای شروع به خواندن اینه که چشمانم رو باز کن تا حقیقتی رو که برام داری ببینم همین الان امروز این روش خوبی برای نزدیک شدن به کتاب مقدسه. مایل باشید اقرار کنید که بخشی هستند که درک نمی کنید. مثل این بخش در اول پتروس 12. من اخیراً از تفسیر مارتین لوتر به اون نگاه می کردم و مارتین لوتر گفته کسی نمیدونه معنی این آیه چیه. اون به من نیرو میده. خیلی خوشحالم که کسی اونقدر صادقه که بگه کسی معنی اون آیه رو نمیفهمه. فکر می کنم آیات مشابه اون در کتاب مقدس هستند. احساس واقع گرایی نکنید وقتی به یکی از اون آیات میرسید در همون راستا در رابطه با همون چیزها در کتاب مقدس که بنیادی نیستند یا به اندازه اصول بنیادی کلام خدا مهم نیستن دچار عدم تعادل نشید. یک چیز تشویق کننده هست که لازم یادتون باشه. در تصنیه 29-29 میگه چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست و اما چیزهای مکشوف تا به عبد از آن ما و فرزندان ما هست. تا جمعی کلمات این شریعت را به عمل آوریم. شخصی به شاعر معروف مارک توان گفت من کتاب مقدس را دوست ندارم چون آیات خیلی زیادی هست که نمیتونم بفهمم. و مارک توان گفت آیاتی از کتاب مقدس که منو نگران میکنه اونایی نیستن که من نمیفهمم. اونایی که منو نگران میکنن آیاتی هستند که میفهمم. چیزهای مخفی هستند که از آن خداوند هستند. او اونا رو با کسی در میون نمیذاره اما چیزهای خاصی هستن که میخواد ما انجام بدیم و اونا رو برای ما روشن کرده پس در رابطه با چیزهای مبهم دچار عدم تعادل نشید این اصراری که خداوند برای کسی فاش نکرده فراموش نکنید که هیچ آیه‌ای در کتاب مقدس نیست که کسی بتونه به طور اختصاصی و یا جدا از بقیه کتاب مقدس اونو تفسیر کنه آیه حفظی ما یادتونه اون چیزی که منظور پتروس در دوم پتروس یک بیست هست، اونجا که میگه هیچ وحی کتب مقدس زائیده ی تفسیر خود نبی نیست. بهترین تفسیر کتاب مقدس خود کتاب مقدسه. شما میتونید همه ی تفاصیر و ابزاری رو که من توصیه کردم بخرید اما اینو فراموش نکنید. مخصوصا وقتی عهد قدیم رو میخونید، اگه عهد جدید عهد قدیم رو تفسیر میکنه، یادتون باشه، بهترین تفسیر کتاب مقدس خود کتاب مقدسه. در جستجوی حقایقی برای زندگی کردن به کتاب مقدس مراجعه کنید نه اینکه فقط معلوماتتون اضافه بشه در همون زمینه یادتون باشه که معلومات کتاب مقدسی پرهیزکاری نیست بلکه تقوا در نتیجه بکارگیری دانش کتاب مقدسی حاصل میشه در فرهنگ امروزی ما این ذهنیت رو داریم که دانش تقوا هست اگه بیشتر میدونید این پرهیزکاریه خیلی ها اون ذهنیت رو از کتاب مقدس دارن ولی اون حقیقت نیست دانش تقوا نیست، حتی دانش کتاب مقدسی، کاربرد اون دانشه، خصوصا دانش کتاب مقدسی که از شما شخصی پرهیزکار می سازه. پس وقتی به کتاب مقدس مراجعه می کنید، فقط برای یک محقق کتاب مقدس شدن مراجعه نکنید. اونطور که عیسی گفت بیایید، با اشتیاق به انجامش مراجعه کنید و با انجام آنچه کتاب مقدس به شما عرضه می‌کنه، به این آگاهی می رسید که اون کلام خداست. این عمل کردن به کلام خداست. اطاعت از کتاب مقدس که کتاب مقدس رو به نیرو تبدیل کنه. نیروی واقعی در زندگی شما. یک اصل بسیار مهم دیگه هست که به من کمک شایانی در خواندن مخصوصا خواندن عهد قدیم کرده. وقتی به کتاب مقدس مراجعه می‌کنید دنبال حقیقت بگردید. حقیقتی که باش زندگی کنید بدون شیفتگی به سبک ادبی که حقیقت رو به شما عرضه کرده. منظور من از این مسئله اینه وقتی مثلا به کتاب یونس اشاره میکنید بلا فاصله بعضیا میخوان بحث کنند که آیا نهنگ میتونه انسان رو بله یا نه به نفی که گویی کل پیغام کتاب یونس همین هست البته بحث واقعی هست که کتاب یونس نمیتونه تاریخی باشه بعضیا همیشه بحث میکنند این نمیتونه واقعی باشه اون میتونه در زمره داستان پریان باشه یا در اون حد شما نمیتونید بپذیرید اون واقعا اتفاق افتاده اما منصفانه کتاب یونس حقیقت بزرگی داره که به ما یاد میده. وقتی به کتاب یونس میرسیم از حقیقتی که خدا اونجا به ما تعلیم میده من خیلی تهییج میشم. اون حقیقتی راجع به هست. یونس در واقع داستان یک نبی هست که از نینوائی ها نفرت داره چون نینوائی ها دشمنان او بودن. خدا به یونس نشون داد که محبت خدا تا به دشمنان هم میرسه به نینوائی ها. پیغام یونس این بود. بر تعصبتون غلبه کنید تا خدا بتونه توسط شما کار کنه اون هیچ ربطی به بلعیده شدن توسط نهنگ نداره شنیدم مردی میگفت اگه بتونم باور کنم خدا میتونه مرد گناهکاری مثل منو نجات بده اون وقت میتونم باور کنم نهنگ یونس رو بلعیده همه این خوب و عالیه اما ربطی به پیام اصلی کتاب یونس نداره وقتی به کتاب یونس میرسید یا به داستان آدم و هوا یا هر داستان دیگری در عهد قدیم با طرح این سوالات به اون داستان بپردازید. اون چی میگه؟ معنی اون چیه؟ معنی اون برای من چیه؟ خدای چه حقیقتی رو میخوای از این آیات به من نشون بدی؟ در مزمول 119 آیه 160 راجع به کتاب مقدس میبینید. اون اینطور میگه همه ی کلام تو حقیقت است. چیزی که اون به من میگه اینه که وقتی به کلام خدا نزدیک میشی، دنبال همه حقیقت بگرد منظور من اینه تصویر بزرگی بگیرید حقیقت بزرگ رو دریافت کنید حقیقت اساسی رو دریافت کنید خدا چی میگه پیغام جامع و فراگیر او اینجا چیه با همین روح به کتاب‌های کتاب مقدس بپردازید مخصوصا در عهد جدید چیزی رو جستجو کنید که میتونیم بهش استدلال یا راستای برهان کتاب مقدس بگیم کتاب‌های مانند رومیان و عبرانیان استطلاال های باشکوهی دارن. اونجا یه تز یا عقیده اصلی هست که در سرتاسر سر کتاب ادامه پیدا میکنه. از همون کلمه نخست تا اون کلمه آخر، باب و آیات تا قرن سیزدهم وجود نداشتند. یک کاردینال کاتولیک رومی به نام کارو کتاب مقدس رو به باب تقسیم کرد و در قرن شانزدهم باب ها رو به آیات تقسیم کردند. یعنی جهت توجه شما باید بگیم پولس رسول هرگز چنین چیزی نشنیده اول قرنتیان ده سیزده چون وقتی او برای قرنتیان نامه مینوشت نمیدونست که قرنها بعد اون به بابها و آیات تقسیم خواهد شد گاهی بابها و آیات بسیار مفید هستند خیلی تسهیل کننده هستند کار ما رو راحت می کنن. اما گاهی میتونن رشته افکار شما را پاره کنند که حقیقت رو گم کنید حقیقتی که نویسنده کتاب سعی داره تفهیم کنه پس سعی کنید استدلال کتاب رو درک کنید همیشه زمینه یا فضای هر بخش از کتاب مقدس رو مد نظر قرار بدید. یکی از زیرکانه‌ترین راه‌ها برای دروغ گفتن اینه بعد جلوه دادن حقیقت یا ذکر حقیقت خارج از زمینه اون یا فقط گفتن بخشی از حقیقت. اگه آیه رو خارج از زمینه اش استفاده بکنید، کتاب مقدس میتونه برای اثبات هر نکته‌ای که می‌خواید اثبات بکنید به کار بره. پس همیشه به زمینه هر پاراگراف از کتاب مقدس توجه کنید. به این معنی که متن رو در زمینش تفسیر کنید یادتون باشه که کتاب مقدس کتابیه که خدا توسط اون با ما حرف میزنه همیشه با دعا به این کتاب نزدیک بشید از اونجایی که مشتاقید هر کاری رو که این کتاب میگه بکنید مانند سمایل به این کتاب نزدیک بشید به خدا بگید بگو خداوندا خادمت میشنود یعنی آماده هم هر کاری رو که تو به من میگی بکنم یا مثل توماس ای کمپیس که کتاب مقدس رو با این دعا باز میکرد باشد که همه صداها خاموش شوند تو خداوندا تنها تو با من حرف بزن یعنی رک و بگم همه صداها خفه بشن حالا خدایا با من حرف بزن محرک مخفی زیادی هستند، صداهای زیادی که امروزه به ما فریاد میزنند پس ما به خلوت نیاز داریم و زمانی که با خدا در این کتاب تنها باشیم و دعایی مثل اون بکنیم بگذار همه صداها خاموش شوند خدایا تنها تو با من حرف بزن. همین اطلاعاتی که من درباره کتاب مقدس با شما در میون میذارم میتونه ادراک شما را برای فهم کتاب مقدس باز بکنه. دعای من اینه که شما جذب کلام خدا بشید و اجازه بدید که کلام خدا در شما نفوذ کنه. تا اینجا ما به شما مقدمه ای از کتاب مقدس دادیم. کتاب مقدس چیه؟ چطور مطالعه کنیم؟ و چطور این مهمترین کتاب جهان رو مطالعه خواهیم کرد؟ اگه شما به این دروس مهم نرسیدید، از کسانی که در کلاس هستند یا از رهبران بخواید به شما کمک کنند محتوای اون رو بفهمید. حالا میخوام بررسی اولین کتاب کلام خدا رو شروع کنم کتاب پیدایش کتاب پیدایش راجب آغاز هاست. کلمه جنسیس یا پیدایش اسم این کتاب با کلمه ژنتیک مشابهت داره. اون مربوط به آغاز ها هست. چرا خدا کتاب مقدس رو با صحبت از آغاز ها شروع کرده. در کتاب پیدایش خدا راجب خیلی چیزها اونطور که بودن با ما حرف زده چون میخواد ما اون چیزها رو، همونطور که هستن بفهمیم ایمان دارم عیسی کلید کتاب پیدایش رو به ما میده در انجیل متی باب 19 مردم نزد عیسی آمدند و از او سوالی در باب ازدواج پرسیدند وقتی اونا از عیسی سوالات مربوط به ازدواج رو پرسیدند عیسی گفت اگه میخواهید ازدواج رو انطور که هست درک کنید برگردید و ازدواج رو انگونه که بود مطالعه کنید به موسا برگردید به پیدایش برگردید این سوال رو بپرسید قصد خدا چی بود وقتی انسان رو زن و مرد آفرید ازدواج رو اونطور که بود بخونید عیسی گفت ازدواج را آنطور که هست خواهید فهمید به نظر من این کلید کتاب پیدایشه باور من اینه که باید از این دیدگاه به کتاب پیدایش نزدیک شد همه پدیدهها به دنبال هم در کتاب پیدایش بر حسب آغاز اونا مورد بحث قرار میگیرند وقتی به هر کدوم از این پدیدهها در کتاب پیدایش میرسید با این سوال شروع کنید خدایا چرا اینجا هر چیزی رو اون طور که بود شر می‌دی برای اینکه از اون قدردانی کنم و اون اونطور اون طور که هست بفهمم مایلم پیشنهاد بکنم که کتاب پیدایش را از این دیدگاه مروری اجمالی بکنید قبل از هر چیز در کتاب پیدایش خدا کمی راجع به خلقت اونطور طور که بود با ما حرف میزنه تا اینکه خلقت رو اونطور طور که هست بفهمیم چنان که قبلا اشاره کردیم 1189 باب در کتاب مقدس وجود داره که تنها 1.5 باب از اون بابها. وا خلقت سر و کار داره شما گاهی فکر می‌کنید که اگه با یه شخص روشنفکر راجع به مسائل مذهبی بحث می‌کنید موضوع خلقت تنها موضوعی که کتاب مقدس با اون سر و کار داره اون به خلقت خیلی خلاصه می‌پردازه فقط یک و نیم با. اما اصلا چرا از خلقت بحث می‌کنه چرا خدا اصلاً مطالبی راجع خلقت به ما میگه بر این باورم خدا که در کتاب پیدایش اندکی از خلقت آن طور که بوده با ما صحبت می‌کنه چون میدونه روزی ما هم مانند داوود به جایی می رسیم که میفهمیم در درونمان به عمل خلقت نیاز داریم. داوود به طور رقتنگیزی شکست خورد و وقتی شکست خورد او اینگونه اعتراف و دعا کرد. خدایا دلی تاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز. چیزی که داوود داشت در مضمور پنجاه و یک ده دعا میکرد کرد دقیقا این بود. خدایا من به عمل خلقت در دلم نیاز دارم. اگه تو چیزی درون من خلق نکنی که در بدو تولد در من نبوده من دوباره و دوباره و دوباره شکست خواهم خورد خدایا به عملی از خلقت نیاز دارم وقتی عیسی از تولد دوباره حرف میزد او گفت باید از نوع متولد بشی چون آن که از جسم زاده شده فقط جسمه وقتی از رسولان در مورد های عیسی راجع به تولد دوباره توضیح خواستند رسولان اون رو عملی از خلقت توصیف کردند پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت همه چیز تازه شده است. خدا عملی از خلقت در قلب کسی که از نو متولد شده انجام داده. اون خلقت به همان صورتی هست که هست. وقتی ما بالاخره بفهمیم که به عملی از خلقت نیاز داریم ایمان دارم که خدا میخواد بدونیم که فقط او این کارا میکنه و ما باید برای اون عمل خلقت به سوی او برگردیم. ایمان دارم که به این دلیل خدا از خلقت همان گونه که بوده با ما حرف میزنه تا اینکه از خلقت قدردانی کنیم همانطور که هست. در کتاب پیدایش کلماتی هست که به ما کمک میکنه این دیدگاه رو به خاطر بسپاریم. او از خلقت با ما حرف میزنه آنگونه که او بود و آنگونه که او هست. خدا میخواد ما خودمون رو همونطور که هستیم درک کنیم. از این رو در کتاب پیدایش از خلقت انسان به شباهت خودش با ما حرف میزنه که این به ما کمک میکنه. خودمون رو اونطور که واقعا هستیم درک کنیم. در باب سوم پیدایش خدا از چیزی با ما حرف میزنه که میتونیم بهش بحران بگیم. کتاب مقدس بهش میگه گناه. آدم و هوا در باغ چیکار کردن. اگه پیدایش باب سر رو مطالعه کنید، دنبال حقایق بگردید و یادتون باشه اون باب از گناه اونطور که بود با ما حرف میزنه تا ما گناه رو اونطور که هست درک کنیم. به محض اینکه اونا گناه کردند، خدا شروع کرد به حرف زدن با اونا که خیلی زیباست. در باب سوم پیدایش وقتی میبینید خدا دنبال آدم میگرده از او این سوالات رو میپرسه. کجا هستی؟ کی به تو گفت؟ شما خدا و انسان رو در حال گفتگو با همدیگه دیگه میبینید. اون مکالمهی بین خدا و انسان بود همونطور که بود تا امروز ما گفتگو با خدا رو همونطور که هست درک کنیم. چون اونا در بحران گناه شکست خوردند. عواقبی براشون به دنبال داشت در باب چهار آغاز ناسازگاری بین قائن و حابیل رو میبینید اون داستان راجب ستیزه هست به همون شکل که بود تا ما ستیزه رو همانگونه که هست درک کنیم ستیزه یکی از بزرگترین مشکلات امروزی ما هست خدا میخواد ما نزار رو در روابطمان با و قوم ها درد کنیم او میخواد ما نزار رو آنگونه که هست درک کنیم به این دلیل در پیدایش چهار او از نزا آنگونه که بود با ما حرف میزنه در باب 6 تا نه در پیدایش خدا از بلا آنطور که بود با ما حرف میزنه تا ما بلا را آنگونه که هست درک کنیم خدا تمام دنیا رو نابود کرد به اون طوفان میگیم در باب 6 تا نه پیدایش داستان نوح و طوفان رو داریم اینجا فرصت خوبی برای اینه که بفهمیم بهترین تفسیر کتاب مقدس خود کتاب مقدسه عهد جدید به ما تفسیری از داستان طوفان میده دو بار اونو توضیح میده و اونو با بازگشت ثانویه خودش مقایسه میکنه. رسولی که کتاب عبرانیان رو نوشته به ما میگه که اون تصویری از ایمانه. نویسنده عبرانیان بر ایمان نوح متمرکز میشه و میگه این درسیه که باید از اون داستان فاجعه آموخت. پتروس رسول اونو با نجات مقایسه میکنه. اون میگه نوح در کشتی رو بر روی مردمان باز کرد و گفت: میتونید وارد کشتی بشید و نجات یابید. اون یه نماد خوبیه، تصویر خوبیه. از چیزی که امروزه بهش نجات یا رستگاری میگیم. همین که داستان طوفان نوح رو میخونید، دارید داستان مصیبت رو همونطور که بود میخونید. از خودتون بپرسید، اینجا چی همونطور که بوده شرط داده شده. خدا میخواد من چی رو همونطور که هست بفهمم. باور دارم که شما کاربرد اون داستان رو خواهید فهمید. در کتاب پیدایش در کتاب پیدایش همینطور عهد بین خدا و انسان رو میبینید. پدیده آمدن خدا نزد انسان و بستن یک عهد با او رو میبینید. این در سراسر کتاب مقدس اتفاق میفته. وقتی عیسی رسولان رو ملاقات میکنه میگه دنبال من بیایید و من شما رو خواهم ساخت. دنبال من بیایید سهم شماست من شما رو خواهم ساخت سهم منه. این یک عهده، یک توافق نامه است. خدا عهدهایی مثل اون با ما می‌بنده این همون معنی کلمه عهد قدیمه پیمان قدیم و عهد جدید یعنی پیمان جدید قرارداد جدید پیمان قدیم اینه وقتی میگم کاری برای برداشتن جدایی بین انسان و خدا خواهم کرد باور کن چون عیسی خواهد آمد پیمان جدید اینه وقتی میگم کاری برای برداشتن اون جدایی کردم باور کن چون عیسی آمد خدا میخواد ما با او پیمان ایمان ببندیم پیمان آنگونه که بود تا بتونیم پیمان را آنگونه که هست درد کنیم. این از کتاب پیدایش باب نه در پایان داستان طوفان آشکار میشه در باب یازده پیدایش داستان خیلی جالبی میبینید. مردانی رو میبینید که یکی شدهاند خدا پایین رو نگاه میکنه و میگه ببینین بازها یکی شدن تمام فکر و تکنولوژیشون رو به کار گرفتن. چرا اگه اونا یکی بشن کاری نیست که از احتشون بر نیان و خدا میگه فکر میکنم باید اونو به هم بزنم. پس پایین میاد و اونا رو پراکنده میکنه. در داستان برج بابل خدا قصد داره چی رو همونطور که بود و همونطور که هست شرح بده. فکر میکنم او به ما چیزی خیلی مهمی رو نشون میده. به نظر میرسه که خدا تا قرنها از یکی شدن انسان و توسعه تکنولوژی اونها ممانعت کرده خدا عمدن همه اونها رو بر هم زد زبان اونا رو مخشوش کرد تا نتونن با هم مراوده کنن جالب نیست که در اوایل قرن 19 حدود 1900 به نظر میرسه مثل اینکه خدا اون آشفتگی رو برداشته و به انسان اجازه داده یکی بشن و ارتباطات و حمل و نقل و تکنولوژی واقعا دنیا رو یکی کرده به ندرت چیزی هست که بشر نتونه با اون تکنولوژی انجام بده اون قدرت داره خودش رو بارها و بارها نابود کنه چون مغزش رو انباشته. در دانشگاه پرینستون در طی جنگ جهانی دوم دانشکده ای بود که ترین افراد در این کشور در اونجا یکی شدن تا بمب به اتم بسازن. حالا تکنولوژی بشر وقتی انباشته شد واقعا نتایجی دهشتناک به بار آورد جالبه که در کتاب پیدایش وقتی انسان شروع به یکی شدن کرد خدا در ابتدا گفت بس کن. کاری هست که من باید بکنم. بعد او به ابراهیم ماموریت داد و شما اون دوره تاریخ دو هزار ساله رو دارید. بعدها به نظر میرسه خدا اون موانع رو بر و میگه بسیار خوب. برید جلو، یکی بشید. هر کاری میخواید بکنید. امکان داره دنیا از بین بره یا به آرامی برسه؟ بستگی به حکمت شما داره چون خدا به بشر اجازه داد یکی بشه. خدا در باب یازده پیدایش درباره چی حرف میزنه اونطور که بود و اونطور که هست. وقتی به پیدایش باب دوازده می می‌رسید با سه شخصیت مواجه می‌شید ابراهیم یعقوب و یوسف خدا حرفای زیادی از طریق شخصیت‌ها در کتاب مقدس با ما زده خدا می‌خواد ما ایمان رو درک کنیم ایمان خیلی خیلی مهمه پس خدا به ما داستان مردی به نام ابراهیم رو میگه خدا می‌خواد چیزی رو که امروزه به نام بحران هویت می‌شناسیم درک کنیم پس او داستان مردی به نام یعقوب رو به ما میگه. خدا میخواد ما بدونیم که مسئولیت با او هست. او حاکم بر شرایط زندگی ماست. به این دلیل داستان مردی به نام یوسف رو به ما میگه. خب این یه اجمالی بود از کتاب پیدایش. وقتی کتاب پیدایش رو میخونید به همه این چیزها همونطور که بودن نگاه کنید. هر بار شما میبینید کتاب پیدایش چیزها را همون طور که بودن شرح میده از خودتون بپرسید خدا راجب الان به من چی میگه همونطور که هست چیه که خدا میخواد همون طور که هست من بدونم چون اون راجب اون چیزها همونطور که بودن در کتاب پیدایش با من حرف زده حالا در واقع ما به ابتدای مطالعه کتاب مقدس رسیدیم میخوام شما را به چالش وا سه کار انجام بدید یک مطمئن بشید این درسها ها رو از دست ندید و تکالیفتون رو انجام بدید آیات هفتگی رو حفظ کنید دو از دوستان و اقوامتون دعوت کنید در این دروس مهم مطالعه کتاب مقدس به ما ملحق بشن و آخری اگه تا حالا خوندن کتاب پیدایش رو شروع نکردید الان شروع کنید و یادتون باشه از خودتون این سوالات مهم رو بپرسید اون چی میگه؟ معنی اون چیه؟ و برای من چه معنایی داره؟ یا خدا با چیزی که یاد میگیرم به من میگه چیکار کنم؟ آدم شکا که اغلب کتاب مقدس رو به استهزا میگیره و میگه چطور کسی میتونه بگه اینا مربوط به امروزه؟ خب احتمالا اونا هرگز کتاب مقدس رو نخوندن حتی کتاب پیدایش رو اما ما یاد میگیریم که خدا به ما میگه اون چطور بوده و همونطور هم که هست میتونیم بدونیم. امیدوارم که شما از این مطالعه برکت گرفتین و ترتیب خواهید داد که در جلسه بعدی که مطالعه کتاب پیدایش رو شروع می‌کنین؟ با ما همراه باشین.